کلام جاودان برنامه‌ی در راستای آشنایی با تفسیر موضوعی قرآن کریم کلام جاودان تبیین آیات و پیامهای هم موضوع و هم از کتاب هدایت و رحمت این برنامه را روزهای چهار شنبه ساعت 8:20 بامداد از رادیو غزالی شنونده باشید. افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک یمنحوها اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللت من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله در آیات مبارکه گذشته خداوند بزرگ انسانها را به سه گونه تقسیم کردند فا که کفرشان آشکار بود و منافقین و مؤمنین مخلص در این آیه مبارکه حالا خداوند همون گروه مسلمانان را مورد خطاب قرار می دهد و اینها را مخاطب قرار می دهد یا به اشاره به این داره که اون دو گروه دیگر با وجود تمام دلائل اونها به رای نیامدن پس اینجا خطاب و روی سخن با مسلمانان هست و این آیه مبارکه شنونوزیل هم دارد در برخی روایت آمده که حضرت عبدالله ابن السلام و برخی دیگر که یهود بودن و مشرف به اسلام شدن اینها با خود فکر کردن که در اسلام اگرچه روز شنبه محترم نیه ولی من امنه نشده که اگر ما احترام روز شنبه داشته باشیم وقتی نشده پس چون در تورات و در دینی موسا اسلام احترام روز شنبه بوده ما احترام وزور هم داریم و میگیریم و همچنین گوشت شطور اگرچه در اسلام هرامنیه ولی به خوردن ازو لازمی هم نشده که هتما انسان باید گوشت شطور یا شیر رو بخورده اما در تورات حرام بودیدم پس اینا با خود فکر کردن که ما روز شمبر هم احترام میکنیم و گوشت شتر و شیر شطور هم نمیخوریم یعنی به نوعی هم به تورات عمل میکنیم و هم با اسلام در بینشان یک تلفیق به وجود میاریم اینجا بود که آیه مبارک نازل شد و اونها را مورد خطاب قرار میده و میفرمانید یا ایوهالدین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید ای مؤمنین و مسلمانان او دخول و فیسیل، شما داخل شوید در اسلام کافتاً به صورتی مجموعی و همه ایتا به هم صورتی همگی و همه جانبه شما به اسلام داخل شوید یا یعنی اینکه شما همه احکام اسلام را بر خود تطویق کنید و عملی بسازید، این نمی شود که شما یک بچه از تورات بگیرین عمل کنین و برخی از اسلام وقتی که به اسلام میان یعنی کامل و پره به اسلام داخل شوید و تتبعو و شما پیروی نکنید خطوات شیطانی، گام شیطان را اینهو به شیطان لکم برای شما عدوب و مبین، دشمن آشکار و دشمن واضحی هست پس براهن شما به دنبال گامه شیطان نروید به دنبال قدمهای شیطان نروید و پیروی اونها را نکنید در این آیه مبارکه برای ما و شما چند پیامی مهم میکشت یکی اینه که در این آیه مبارکه خداوند بزرگ دستور میده که شما در اسلام به طوری کامل داخل شوید اما به جایی که گفته بشه یا ایلید این آمده خورو فیل س... فی اسلام به جای جا آمده فی سلم. تعبیری فی سلم به کار برده شده منظور سلم به جمهوری مفسرین همون اسلام هست یعنی شما در اسلام به طور کامل داخل شوید اما اسلام را اینجا به سلم تعبیر شده سلم به معنای سلامتی به معنای آرامش می آید این اشاره به اداری تعبیر و پیام اینه که آرامش واقعی و سلامتی واقعی فقط در داخل شدن کامل به اسلام هست غیر از داخل شدن کامل به اسلام هیچگاه انسان سلامتی و آرامش واقعی ندار اگرچه در ظاهر انسان شاید فکر کنه که برزو نوی ترقی و نوعی آرامشی هست ولی در معنا و در حقیقت وقت انسان متوجه بشه آرامش انسان و راحتی انسان یعنی آرامش روانی انسان سلامتی انسان، سلامتی، آبرو، حیثیت، جان مال همه چیز بهجز از داخل شدن کامل در اسلام به دیگه جای وجود نداره. هر زمانی که انسان ناآرامی داره، استراب داره، پریشانی داره، جان و مال و امنیت رو از بین میره، همه به خاطر اینه که احکام اسلامی به طور صحیح و درست در اونجا عملی نشده. چی در زندگی فردی انسان و چی در زندگی عمومی و اجتماعی. پس این پیامه اینه که شما اگر میخواهین در سلامتی به سر ببرین. اگر شما میخواین در آرامشی واقعی به سر ببرین، شما در اسلام به طور کامل داخل شوید. نتیجه هم و تجربه هم نشان داده همه ما و شما می بینیم که هر زمانی که مشکلی بوده، مصیبتی بوده، ناامنی بوده، هر چی که در جامعه بوده، ناآرامی بوده، به خاطر همین بوده که مردم به طور کامل چی حکومت، چی نظام، چی به صورت شخصی اما اعکام اسلامی در زندگی ما تطبیق نشده بلا ان نعارمی و اضطراب و پریشانی هست. و این بعد ما شما هم متوجه باشیم که کسانی که از کشورهای غریبی و کفار که شاید ما در ظاهر فکر کنیم اونها به اسلام هم داخل نشدن و آرامش دارند، اینتر نیسته. اونها به هیچ عنوان آرامش ندارن. اضطراب و پریشانی که اونها دارن وقتی انسان تحقیق میکنه و میخوانه زندگی اینا و سخنان دانشمندان اینا اونها خود اینا در تمام زندگی امروز به بنبست رسیدن حتی اینا رو فهمیدن که آرامش بجوز از همون دین و مذهب در چیز دیگری نیسته بی خاطر اونها روی آوردن به ای برای خود یک ایرفان ها و دین های مصنوعی ساختن که سبب و جو بلکه به آرامش برسن چیز واجهی که در روح هم خو آرامش به دین واقعی هست و به ایمان واقعی هست نه او چیزی که اونم برای خود می سازن. پیام الهی مبارکه برای ما شما همینی که انسان به طوری کامل در دین داخل بشه و در اسلام داخل بشه برای جو آرامش، سلامتی و راحتی هست در غیر جو سلامتی انسان و آرامش واقعی انسان وجود نداره پیام دیگری که اینجا داره در همین کلمه کافتن دستور داده شما در اسلام در سیلم کاف فتن. کاف فتن، یعنی به صورت مجموعی، به صورت همه. بیره مفسرین کارم دو صورتی بیان کرده، یک نی یعنی انسان با تمام وجود. با تمام وجود داخل شد به اسلام، یعنی پیام جایی میشه که با تمام وجود داخل شد، یعنی هم فکر ما اسلامی باشه، هم اعمال ما، اسلامی باشه هم فرهنگی ما باشه هم تمام انا عناب های ما اسلامی باشه این طورا باشه که ما در عبادات خود اسلامی باشیم ولی در فرهنگ و در اندیشه خود غیر اسلامی باشیم در ظاهر اعمال اسلامی انجام بدیم اما در باطین مریجه های باطنی و روحی ما وجود داشته باش که همه غیر اسلامی باش این نمیشه بلکه بعد ما به همه وجود به اسلام داخل شیم فکری ما، قلب ما، روح ما، ظاهری ما، باطنی ما، همه و همه اسلامی باشه و احکام اسلام را در همه وجود تطویخ کنیم ای یک مرای کافتن هست و پیام این برای ما و یکی دیگه اینه که کافتن به مخفصیر بیرن کدن شما داخل شنه یعنی همه احکام اسلامی در زندگی خود تطویخ کنیم تقیل من مرای هر تو یکی و این از جانب اینه که شما در اسلام کافتن داخل شنه یعنی همه اسلام را تمام اکام اسلام در زندگی خود تطبیق کنید. اینطور نباشه که برخی اکام اسلام را شما تطبیق کنید و برخی باز ترک می‌کنید. یه چاربی داره که پس ما بعد سلیقه ها کانال می‌گذاریم. اینا میشه که سلیقه های ما، رسوم و آدانات ما با امر اسلام جمع کنیم. این ممکن نیست. همه اکام اسلام را تطبیق کنیم. نباشه که ما از یک طرف اکام اسلامی ما به اون پایبند بشیم، از یک طرف هم به رسوم و آداناتی که ما داریم امرو رسوم و اناناتی که خلاف اسلامه این امکان نداره در واقع هم رسوم و اناناتی که مردم دارن یک دینی که به پروی اسلام اونها هم مردم به اون و اون پیروی میکنن خیلی جاهای ما و شما در هر منطقه فرق میکنه و هر جای یک رسم و یک اناناتی دارن که خلاف اسلامه در مسائل ازدواج در مسائل مصیبت ها و در دیگه مسائل برخی یک اصطلاحات و رسومی دارند مردم که کاملا خلاف اسلام و کاملا خلاف دینه و به اونها مردم سخت پایبندند مردم های متقی پریزگار بگه رسم ایمانه ی ای این این فلان چی قبیله و قوم به او پایبندند ای بیان میشه که نه او نمیتونی شما که هم به او پایبند باشین هم به با اسلام کاف شما همه احکام اسلام را در زندگی تطبیق خونین در هر جایی که شما اونجا فکر رسم و در همون جا اسلام حکم خکمی اسلام اونجا یک ایک برنامه داره که بعد شما او رو تطبیخ کنین و عملی بسید. مثلا بزی مناطق ما با شما کم در بعضی مناطق دیگه هستی که این زن که بیوه میشه این بونوان میراز فکر میکنن. این اجازه نمیدن که بیجای بره ازدواج کنه حتما باید باید با امو اقربایی امو متوفایی ازدواج. کنه. یک رسمی خلافی سری اون خلافی نسی سریع قرآه کردیم ولی اونا سخت سختبی پایبندن مردم خود و خود متقی پجی میگیرن ب هم اخاً و پای بندن حال ای خودجی در واقع دیینیه وی به مرایینکنیا در اسلام به طور کامل داخل نشدن یک قسمت از دیگه چی در هم برای خود دین انتخاب کردن وال ای پیامی که ما رسم ها رسومات سلی قرار کنار بگذاریم و در تمامی برنامای که داریم عاکام اسلامی رو درجه تریح خویم. شوقا الى أسلمت بالقرآن في رحبه تحلو الحياه شوقا المولى اسلمت روحي للاله اینکه که درمی خود شما پیروی خطوات شیطان را نکنیم بعد که خداوند مرعبر میکنه که شما در اسلام به طور کامل داخل شوین فوراً با نهی میشه که شما دنباله گمهای شیطان نروید این پیام اینه و اشاره به داره که دو راه وجود داره راهی سوم نیست یا داخل شدن به طور کامل در اسلام یا رفتن به دنبال گمهای شیطان راهی سوم اینه که شما فکر کنیم که ما اگر در اسلام به کامل داخل نشویم راه شیطان رو هم نمیریم یک راه متوسط و راه می میرویم که نه حق باشه نه باطل ای امکان نداره فقط دور راه وجود در راه حق راه باطل اگر شما راه حق رو نرفتین که راه اسلامه او یقین کنید که شما در راه باطل رفتین در راه شیطان رفتین های شیطانه چی در رسوم و انعنات باشه چی در زندگی خانوادگی باشه در هر کار برنامه فقط دور برنامه یک برنامه الهی و خدایی، یک برنامه شیطانی. مثلا ما می مراسم ازدواج عروسی داشته باشیم. این دو برنامه، یک برنامه طبق شرعی که شریعت برامون تعیین کرده که ما بموره باش، همین برنامه ازدواج مسئولیت بگیره، یک برنامه برنامه شیطانیه. این راه ای صوم وجود نداره که ما نه اسلامی بسازیم و نه هم بگیم با شیطانی باشه. صوم باشه وجود نداره به عنوان. فقط این نبود اون این داره که هم متوجه باشیم که راه بین و بین و راه ثبوت مینی بلکه اگر شما در راه اسلام و طبق اسلام برنامه های شما نبود این راه شیطان را رفتن به عنوش رای شیطان شاید خود انسان متوجی هم نشه و نبوده باشه و همچنین ای خطابات شیطان اشتاوه بارنامه های شیطان که برنامه های شیطان و گمراه شیطان تدریجی گام به گام که در آیاتی که گوزشتن امی م شیطان در گمرایسیزی انسان به صورت تدریجی و گام به گام حرکت میکنه تا انسان رو به گمرایی های کلون بکشنه و ببره برحال بیشتر اشاره به داره که راهی ثومی وجود نداره متوجه باشیم که فقط یک راهی اسلام که ما کامل داخل شیم و اگر نشودیم راهی شیطان و راهی باطل و در بینیجینا دیگه راهی ثومی نیست آیه مبارکه بعدی که آیه دو نهم هست در این آیه مبارکه خداوند بزرگ هشدار میدهد انسانها را که بعد از این همه دلایل واضح و آشکار اگر شما باز هم بدون دونبالی گامه شیطان رفتین دیگه هیچ اوزیر برای شما وجود نداره و میفرمهند فی این زللتوم اگر شما بلغزیدین ذلت زل... بناید لغزش میاد فی این زللتوم اگر شما بلغزیدین یعنی شما خطا خوردین من بعد ما جماعت کم البینات من بعد مواجعتكم من بعد یعنی بعد جن جاعت آمد از جنگی جوعتكم البينات آمده از شما را دلایل آشکارا و واضح و راه روشانی از اسلام و دین و احکام دینی برای شما آمده بعد اگر شما بلغزیدین یعنی به دنبال گمراهی شیطان رفتین پس هشدار میده فعلمو بدارید ان الله عزیز حکیم به تعقیح خداوند عزیز و غالب است توانا هست حکیم با حکمت است و همه امور از حکیمانه هست ای امور که در مجموع توری که گفتیم این پیامجی به توری کلی همینه که یک نوع خوشدار برای ما هست و بیان میداری که بعدجی که برنامه های الهی و آیات الهی همه برای ما بسیار واضح و روشن رسیده و برنامه برای ما داده شده که بسیار راه صحیح و راه واضح و روشنیه پس دیگه اوضری برای ما با نمونده که ما لغزش کنیم یعنی جایی برای لغزش و برای اینکه ما بدون دنبال گامهای شیطان برویم وجود نداره با این برنامه روشن و واجهی الهی پس با وجود این برنامه و با وجود این راه روشن و واضح و بیینی که خداوند برای ما داده اگر ما باز هم ما گامهای شیطان را پیروی کنیم و بلندشیم اینجا دیگه کوتاهی از ما هست تقصیر از ما هست، هیچ اوزیل برای ما وجود نداره که ما ما نوع اوزیل بریم که ما نفیمدیم یا این آن شده نه چون راه واضح روشنه پس وقتی که هیچ کوتاهی از ما هست بدانیم که خداوند عزیز است، یعنی خداوند قدرتمنده ما هیچگاه نمیتوانیم از عذاب خداوند فرار کنیم از مجازات های الهی فرار کنیم و یقینیم که در تحت قدرت خداوند هستیم و هر زمان بخواهد ما را مجازات میکنه و ما فرار کرده نمیتونیم و خداوند حکیم است و تمام او که ما را مجازات کنه یا نکنه همه حکیمانه هست و تمام او به اساس حکمت مبتنی هست پس باید ما متوجه باشیم که با وجود راه روشن ما را شیطان فریب نده و دنبال قدم ها جنرم و و لغش برای ما پیدا نشیم آیه مبارکه بعدی که آیه دوستد دهم است در این آیه مبارکه خداوند بزرگ لجاجتی و انسانهای بیان می داره انسانهای که بسیار لجوج یعنی بسیار بهانه جوی هستند که با وجودی ای که این راهی روشن وجود داره و با وجود این رهنمایه هایی که شده و هشدار برای اینا داده شده که شما دنبال گامه شیطان نروید یکید انسان هستند که باز هم آنها به لجاجت خود ادامه و نهایتا دیگه با وجود همه دلایلی که بنا بیان شده، به اونها اینها ای ایمان نیاوردن و برایشان یقین حاصل نشده، اینا دیگه خیر از آب خداشیه دیگر انتظار ندارن. یعنی گویا انتظار ندارن. یا ایم کمی بیان می‌دارم می‌فرمان هر یعنزرونه آیا نه انتظار دارن؟ یعنی انتظار دیگر ندارن. مگر همین را ایلاکی آن یاتیهم الله بیاید ایشان را خداوند فی زلالی من الغام در سایبان از عبر. والملائکه و همچنین ملائکه خداوند بیایند و قضی الامر و یک فیصله شود امر و کار یعنی کاملا یک شود و همه امور فیصله بشه اینها دیگه انتظار ندارن مگر همین رو یعنی گویا اینها از عملکرد اینها و از موقفی که اینها در برابر همه دلایل واضح و آشکارا دارند که بنا بسیار دلایل آشکارا و, و واضحی از جانب خداوند آمده با وجود اینها باز اینها ایمانه پس اینها انتظار ندارند که دیگه خیریجه که خداوند خودش بیاید با ملائکه بیاین و تمام امور یکسره کنن و فیصله کنن دیگه اینها چیزی دیگری انتظار ندارند یعنی چه دیگه نمانده که با اینا چون همه معجزات و دلایل واضح و عشقار آمده و در پایان یوم المارکه بل میشه و الى الله تورجا و به سوی خداوند هست تورجا او باز میگرد امور کارها یعنی همه بازگشت همه کارها و همه امور به جانب خداوند و از جانب او صادر میشه و پس به او برمیگرده و هیچگاه کشی نمیتونه که از مضمون محاکمه خداوند فرار بکنه و یا از عذاب خداوند فرار بکنه چون همه بازگشت به سوی او هست و اینها توانند به هیچ عنوانی از اون محاکمه و عذاب خداوندی اینها فرار بکنن و نجات داشته باشن دریای مبارکه همونطوری که گفته شد دیگه لجوجتی انسان‌ها بیان داره که کفار و مشرکین تاری اندازه اینا لجاجت داشتن که گویا دیگه فقط منتظری بودن که دیگه خداوند خودش بیاید و بینندگان فیصله بکنه این غیر ممکن هست چون دلایل واضح و آشکار آمده با وجودی دلایل وقتی ایمان نیولند دیگه چیزی نمونه به غیر از در مورد اینکه اینجا نسبتی آمدن بشوی خداوند شده یعتیهم الله خداوند بیاید با در صاحبان یا جمله‌ی متشابهات قرآنی کریم ما در قرآن کریم آیات محکمات داریم که معانی واجه واضح و روشنند در جایی در رحمی تحلو الحیا شوقاً یل مولای تایت اسلم تو روحی لیلا ویا گنوا داریم نور برام متشابهات هات میکنی. یعنی معنا ازو معنای کی درست و صحیح و دقیق جو برای ما پشیده است. ما نمی از جمله داریم جاله نسبتی آمادن باشیم خداوند شده که. یعتی الله بیاید اونها را خداوند بیاید. خداوند بزرگ به اجماع همه علماء سنت از جسم و از مکان و از آمدن و از چیزی که صفات جسم باشه و پاک. وقتی که اجنا هم پاک هسته خداوند پس اینجا نسبت آمدن به خداوند شده ایر به نظریه دو نظریه درجه وجود داره که نظریه علمای سلف که همه به این چیان که ما باید در اینجا دیگه تفسیر و توضیح نداشته باشیم نسبت ایتیان آبادن به شده و ما همونطوری که هست به ایمان داریم و در مورد بحث نمی کنیم و یکم متأخرین که ایر باید تعویل می دن بخاطر که آمه مردم نمی توانند او معنی بفهمن بفهمند ایلا یتی هم عذاب الله از جمله در این جاره نسبتی آمدن به چوی خداوان شده که یعتی الله بیاید اونها را خداوند بیاید. خداواند بزرگ به اجماع همه علمای اهل سنت از جسم و از مکان و از آمدن و از چیزی که صفات جسم باشه منظه و پاک. وقتی که نهایم پاک هسته خداوند پس اینجا نسبتی آمدن به چوی شده ایر به... نظریه دو نظریه درجه وجود داره که نظریه علمای سلفن که همه به این یعنی که ما باید در این دیگه تفسیر و توضیح نداشته باشیم نسبت اعتماد ابداً به خداوند شده و ما همونطوری که هست به ایمان داریم و در موردش بحث نمی‌کنیم و یکم متأخیران که این رو تعویل میدن به خاطری که عامه مردم نمیتوانن عمرای استد به بفهمند الا ایتوم الا ایتوم عذاب الله مگر که اینا انتظار ندارن مگر اینکه خداوند بیاید و همه کار یک شره و فیصله بشه به هر حال اینجا می ما معمره عذاب بگیریم که عذاب خداوند یا اینکه عمرای اشدیو باشه ولی ما کیفیت حضور نمیدونیم و این بعد ما باشه که خداوند از جسم پاکه از اون چیزی که شفاعت جسمه مثل آمدن و رفتن امثال چیزا خداوند منظح و برتر و بالاتر هست یک ای نسبت ایتیان به خدا شده خداوند خودش معنویت به تمام که چی هست آیه مبارکه بعدی که آیه هست در این آیه مبارکه خداوند بزرگ برای ما یک نمونه ایر بیان میدار از او که اونها پیروی گام های شیطان را نمودن و اونها لغزیدن اونها را بیان میداره اونها که هستن؟ اسرائیلن یعنی یک نمونه زنده و بارز و روگشنی از او کسانی که در راه انحراف رفتند و میفرمایند سل بینی اسرائیل سل یعنی سوال بکن و پرسان بکن پیامبر بنی اسرائیل، بنی اسرائیل را کم آتی اینا هم من آیتیم بینه که ما چقدر دادیم برایشان من آیتیم بینه از نشانه های واضح و روشن برایشان دادیم چقدر بنا زیاد دادیم یعنی بنا بسیار در آیل آشکارا و واضح برنامه بسیار روشن و دینی الهی بنا دادیم نو چی کردن؟ یعنی او تبدیل کردن به کفر و اونها به جای که پیروی همون برنامه و آیات روشنگر الهی داشته باشند اونا دنبال گام‌های شیطان رفتن. و وقتی که دنبال گام‌های شیطان رفتن، خداوند اونها را به های گوناگونی گرفتار نمود که به اسرائیل همیشه وقت به زندگی اونها زندگی سراسر مصیبت و مشکلات بود. هر لحظه از یک مشکل نجات میافتند بعد به یک مشکل دیگه گرفتار میشدند البته هم نتیجه اعمال خودشان بود. وی خودشان بودند که اون آیات الهی و برنامه روشن الهی تبدیل می و بدونبال دنبال های شیطان می رفتن. در پایان این مبارکه بیان می شه به عنوان تحدید و هشدار برای انسان هایی که نعمت های پروردگار ایواز بکنن و به جای او به دنبال های شیطان برن می فرمایند و من یو نه و هر کسی که ایواز کند نعمت الله نعمت های خداوند را من بعد هو بعد این که برای رو این نعمت ها آمده اونا را ایوز کند فإن الله شرید العقاب پس او باید متوجه باشه که خداوند به که الله شدید العقاب عذابی بسار شدید داره عقاب یعنی عذاب و عذاب بسار سخت و شدید خداوند برای انسان هست و متوجه خود باشند در این امرکه برای ما و شما یک پیام بزرگی که هست اینکه که یک در واقع سنت و قانون ثابت و کلی الهی بیان میشه هیچ زمان او تغییر و تبدیلی نداره و اونی که انسان اگر نعمتهای پروردگار را تبدیل کنه خداوند او را مورد عذاب شدید قرار میده تبدیل نعمت چی گونه هست؟ تبدیل نعمت اینه که انسان نعمتهای که خداوند برای وجود داده چی نعمت مدی هست چی نعمتهای معنوی هست اونها را در مسیر صحیح رو استعمال نکنه استفاده نکنه مثلا، به نیسرائیل اسرائیل نعمت پیامبر، نعمت تورات، نعمت هدایت الهی برایشان داده شده بود. اینا بود تبدیل کردن، تبدیل کردن یعنی این معنا که به جای که پیروی از او هدایت الهی بکنن، به دنبال هواها نفسانی و به دنبال نفسانی رفتن. پس عذاب خدا به اینا بود، ای بود که خداوند اونا را محروم گردانید از یقین، که هیچ زمان برای یک یقین نایماد، هر زمان به شک و شرمی هر زمان برای معجزه می왔، باز به یک تشویش و یک استراب دیگه گرفتار می که عذاب خداوندی دیونا بود و نمیری خداوند بیان می داره که و ما الله فانا لاشرید تا قانون کلی خداوند که هر کسی هر قومی هر ملتی هر انسان اگر نعمت خدا را تبدیل کنه ایواز کنه عذاب خدا بر او شدید هست این پیام برای هر همه انسان ها هست و این قانون کلی و ثابتی الهیه که عادت خداوندی برمینه این ثابت است که هر کسی نعمت خدا را تبدیل کنه عذاب خدا بره شدید, شدید و لقاب پس این به هر زمانی به هر تاریخی تطبیق میشه مثلا به مسلمان ها وقتی خداوند به مسلمان ها نعمتی اسلام داده نعمتی قرآن داده نعمتی ایمان داده نعمت های بیسار بزرگی که به دیگه ملت ها از این هست این نعمت بزرگی اگر, اگر ما تبدیل کنیم تبدیل این معنا ما دنبال چه نریم وقتی ما دنبال چه نریم به دنبال خواهشات نفسانی بره این تبدیلی نیواد شد پس عذاب خدا بر ما شدید خدا ما را مورد مجازات قرار میده مورد عذاب قرار میده این چیزی که امروز وضعیت مسلمان ها دارن نتیجه این که ما نعمت خدا را تبدیل کردیم برای ما چی شد شدید عذاب سخت خدا. آن. و یک نمونه بشور نزدیکوجو درمیز زندگی خود ما و شما هست که ما و شما درمی بیست و ششش دال قرار داشتیم درمی هفته بیست و دال یعنی زمانی که مسلمانها و ملت افغانستان بر یک آبشار قدرت بزرگ شروعی پیروز شد این پیروزی موافقت یک نیمتش بزرگ خداوندی بود اما ما ایر بعدی که خداوند حکومت و قدرت و نظام را همه به مسلمانها و ملت مردم میجاهد افغانستان داد این تبدیل کرد تبدلنی معنی که ما و دنبال هدفای دیگر رفتیم اجی استفاده های دیگری کردیم و چی شود فین الله شرید العقاب و میبدل نیمات الله فین الله شرید العقاب عذاب و خداونی بر ما که نتیجه دو تا امروز ما و شما نتیجه تلخ دور تجربه میکنیم همینطور در زندگی فردی انسان هم میکنه. در زندگی اجتماعی انسان در همه جا این قانون و سنتی ثابت الهی که این تغییر نمیکنه هر که ما نعمتهای خداوند ایوز کنیم و تبدیل کنیم رموع عذاب شدید الهی به صورتهای مختلف بر انسان می خداوند حضور که همه نجات بوده و خداوند توفیق عمل بده کلام جاویدان برنامه در راستای آشنایی با تفسیر موضوعی قرآن کریم خلاوم اجودان تبیین آیات و پیام های هم موضوع و هم از کتاب هدایت و رحمت این برنامه را روزهای چهار شنبه ساعت 8 و 20 بامداد از رادیو غزالی شنونده باشید افوا تنشب من